ولم تسر السيف خدلانا ولم جبين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد الثناء والصفات بخداوندي كي بما نعمه جهاد وهجره عطى وفرمت درود و سلاوات بر پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم آن رسولی که با ما طریقه های جهاد و هجرد را عملا نشان داد برادران مجاهد و مهاجر، به برنامه امروزی از جمعه تا جمعه خوش آمدید از خداوند متعال در بدل هجرت و جهاد شما برکت ها طلب نموده و دعا میلمایی که ما را در این راه مقدس تا آخرین دمی حیات ثابت قدم بیگرداند. شاعری می فرماید هر کس که تو را شناخت جان را چکند فرزند و عیال و خانمان را چکند دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه ای تو هر دو جهان را چکند همکار عزیز زیاد پر حرفی نمی کنیم از شما میپرسیم پرسیم که در شروع برنامه چی چیز جالب داریم که به خدمت شنواندگان تقدیم نماییم. بله در شروع برنامه مانند هفته گذشته چند سطر اندرز را در نظم تحییه نمودیم که اینک به خدمت شنواندگانی عزیز تقدیم می‌نماییم. میگن که ارزش مال را آن که ندارد می‌داند، آن که را دستگاه و قدرت نیست شلغم پخته مرغ بریان است شرط انصاف فرمانبرداری خداوند است عبروباد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی بکف آری و بغفلت نخوری همه از بهری تو سرگشته و فرمان بردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری انتظار نیکی از آدمی بدزاد نداشته باش از ابلیس هر نباید سجود نه از بدگاهر نیکو در وجود حاجی مردم آزار نیست از من بپرس حاجی مردم گزای را که پوستین خلق به آزار می دارد حاجی تونیستی شطور است از برای آنگی بیچار خار می خورد و بار می برد. آدم شکم پرست آرامش ندارد. اسیری بند شکم را دو شب نگیرد خواب شبیز میده سنگی و شبیز تنگی احساسی مسئولیت اگر بینم کنابینا و چا است اگر خاموش بینی گناه است. اخلاق خوش تلخی ها را شیرین می کند. اگر حنزل خوری از دست خوش خوی به از شیرینی از دست ترشروی باید با تدبیر و اندیشه با دشمن مقابله نمود اگر دشمنی پیشگیرت گیرد به شمشیر تدبیر خونش بریز بد اخلاق همه جا در بالاست اگر زی بالا بر فلک رود بد خوی زی خوی بدی خیش در بالا باشد دوست آن است که مشکلات راه را به تو نشان دهد بنازد من آن کس نیکو خواهی توست که گوید فلان خار در راه توست خوب همکار عزیز آن درس ها را به خدمت شنوندگان تقدیم نمودیم بله خدا کند که این اندرس ها درس خوبی برای شنواندگان عزیز قرار گرفته باشد همکار عزیز در هفته گذشته موضوع جالب را که عبارت شیطان بود به خدمت شنواندگان تقدیم نموده بودیم امروز نیز همان موضوع را ادامه می دهیم. البته اکنون از این موضوع روش های بکارگیری شیطان در گمراه کردن انسان را به خدمت شما تحیه نمودیم که برادر ما شعیب به خانش می گیرد بسم الله الرحمن الرحیم روش های بکارگیری شیطان در گمراه کردن انسان معمولا شیطان یا از لحاظ اعتقادی و یا از لحاظ عمل کرد انسانی راه های زیادی را برای نفوذ کردن در انسان اتخاذ می کند ابن قیم الجوزی رحمه الله تعالی در ارتباط با قضیه نفوذ کردن شیطان از لحاظ اعتقادی شش مرحله را ذکر کرده است که عبارتند است مرحله اول، شیطان سعی می کند که انسان را وادار به کفر یا شرک کند. در این حالت اگر شخص مورد نظر مسلمان باشد، کار او را به مرحله می کشاند. مرحله دوم، مرحله بدعت است که شخص مورد نظر بدعت ایجاد می کند، یعنی آنچه را خداوند با آن دستور نداده، یا رسول الله صلی الله علیه سلم با آن امر نکرده است، وارد دین کرده و با آن عمل می کند. در این حالت اگر شخص مورد نظر از زمره اهل سنت و جماعت باشد وارد مرحله سیوم خواهد شد مرحله سیوم مرحله ارتکاب گناهان کبیره است و اگر خداوند تبارک و تعالی انسان را از مرتکب شدن به این اعمال زیشت محفوظ دارد شیطان در این مرحله باز ناامید نیست از اینکه انسان را فریب دهد مرحله چهارم مرحله گناه صغیره و مرتکب شدن با آنها است اگر انسان در این مرحله از ارتکاب به آنها محفوظ شود مجددن شیطان او را به کارهای شیطانی دیگر مشغول می دارد مرحله پنجم شیطان انسان را به انجام اعمال مباح مشغول می دارد بدین ترتیب که انسان خود را مشغول و سرگرم می کند و وقت خود را سرپی کارهای مباح می کند و با امور مهمتری که با آن دستور داده شده نمی پردازد. مرحله ششم در این مرحله شیطان انسان را به کار مشغول می دارد و او را از انجام عملی که نسبت با آن کار افضلتر و برتر است باز می دارد. مثلا جای فرض به انجام سنت می پردازد و یا آنقدر خود را به انجام عمل سنت مشغول و سرگرم می کند که فرض را ترک می نماید. پس شیطان نسبت به انجام افکار خود حریص و جدی است، اما در عمل کردن به برنامه خود قدم قدم انسان را وادار به انجام آن می کند، همان که خداوند سبحانه و تعالی می فرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الانعام حمولة و فرشة، کلو مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان، انه لكم عدو مبین. این خدا است که برای شما از چهار پایان یعنی شتر، گاو، گوسفند و بز حیوانات را آفریده است که بزرگ و باربرند و حیوانات را آفریده است که کوچکند و از پشم و موی آنها فرشها و گسلدنی‌ها تهیه کنید اینها روزی خداوند برای شمایند از آنچه خدا نصیب شما کرده است و برای شما حلال نامده است بخورید و از راه های شیطان پیروی نکنید بگمان شیطان دشمن آشکار شماست شیطان در مراحل اولیه نفوذ هر دفعه از انسان چیزی یا کاری میخواهد و به همین ترتیب کار خود را ادامه میدهد تا به هدفش میرسد و در هر کسی با توجه به موقعیت و تناسب حال و شخص مورد نظر نفوذ میکند مثلا بر انسان زاهید از راه زهد نفوس میکند وبار يك عالم از راه علم و بار يك جاهل از طريق جهل و نداني وارد نصرا الكفاح البته این شعر درباره تقلید و جهالت گفته شده بسیار جالب است پس میشنویم. تقلید و جهالت تقلید و جهالت همه جا درد سر ماست در هر طرفی فتنه و شر زیر سری ماست آتش زدنی پرچم و سردادنی فریاد سرشاخ شدن با همه تنها هنری ماست انگار که داستان خدا روی سری ماست تا دست ولایت بسری ماست ذلیلیم گر دست خدا بود همه پاک و خلیلیم دونبال او تابع شیطان رزیلیم هر نطق شما مایه شر و ضرری ماست انگار که داستان خدا روی سری ماست برکام دشمن ما ورا ان نهر افتیده ظلم و بالای مرد و زن باریده خونی شهیدانش در دریا جاری گردیده از عشقی خون آمیزی زن خالا لرویده از اشک خون آمیز زن خالالارویده الله ده یا الله الله يا الله الله هو الله, الله, يا الله،, الله, يا الله،, الله این سایه شیطان است نه دست خداوند در جهل و خرافات شده دینی تو در بند در کشور مشرک ها بی‌مثل و بدیلین در سر هر ملت ترس از خطر ماست انگار که دستان خدا روی سری ماست یارب تو بی بخشای که این قوم جهولند از فتنه آخوند همه زار و ملولند باطین همگی بچهی ظاهر همه غولند بدبختی ماها همه از گوشی کری ماست انگار که داستان خدا روی سر ماست. ما ای مینانی ما و ان آنها رب در راه حق بهری جهادی با سفا خزت در شهر و ده و قار و در ها مجا خزت یک جاب ما خزت بهری خدا خزت. یک جا به ما بحری خدا خیزید الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله برخیز که جلست و شعر میدانی نبر کس نیست جز حکمی الله حکمی حق حکمی دیگر کس نیست در راه او جان باز حاله و عبس هم نیست لبیگ لب بگو و سر کن کار هر کس نیست لَبَیک بِگُبو سر بِده کِن کو ر کس نَست اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ ائی دُس چراغ غافل شُدی از دین و ایمان در یاد نیاوردی گزشتگانی در زان شده در پیش دشمن پا و دستانت ایوی بر حالت ایوی بر جانت ایوی بر حالت ایوی بر جانت, جانت الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله. الله, الله باز هم خوش آمدید اکنون نوبت به بخش اخیری برنامه امروزی ما رسید البته در این بخش گزارشات داغ هفته به خدمت شما تقدیم می‌گردد <متحدث> افغانستان با تاريخ 18 ربيان اول مطابق 10 فبراير در ولایت خوست یک مارکت چوپروشی آتش گرفت افراد اطفائیه نتوانستند تا صبح همان این آتش را خاموش سازند در این آتش گیری تقریبا 300 دکان حرق گردیده خسارات زیادی به ملت وارد گردید 22 ربیع اول مطابق 14 فوریه در ولایت هرات جسدی رئیس یکی از شفاخانه های حکومتی که یک هفته قبل اختطاف گردیده بود پیدا گردید. با تاریخ مذکور در والد زاول یکی از هلیکوپترهای نیروهای ناتو از سوی مجاهدین سقوط داده شد. 22 ربیع الاول مطابق 14 فوریه در ولایت تخار ولسوالی در قط پلیس پنج تن از اختطاف کنندگان هیروین را با 20 کلو گرام هیروین و یک میل سلای کلاشنکوف دستگیر نمودند بعد از دستگیری پلیس همه این افراد را به قتل رساندند الله اکبر، الله تعالی دشمن را توسط دشمن به حلاکت می رساند 23 ربیال اول مطابق 15 فیبرواری نیروهای آیسف می گوید که یکی از ازاکری ایشان در جنوبی افغانستان به قتل رسیده است 23 ربیال اول مطابق 15 فوریه شبیه چار شمبه در ولایت فاریاب ولسوالی پشتونکوت جایی که برادران ما با همکاری مجاهدین امارت اسلامی عملیات جهادی را انجام میدادند دادند بالای یک گروه مجاهدین که متشکل از طالبان و مجاهدین حرکت اسلامی اوزبیکستان بود عملیات شبانه صورت گرفت بعد از مقاومت شدید اساکیر سلیبی های شکست خورده دست به فرار زدند ولیکن بعد از فرار از مکان امن بالای مجاهدین از سلاح‌های های و تیاره هایشان نمودند که در نتیجه نوتن از برادران مجاهد به شهادت رسیدند در میان شهید شدگان از مجاهدین حرکت اسلامی اوزبیکستان دوتن به نام های نور الحق از ویلایت تخار خورشید از ویلایت فاریاب ش نظر به گفته های گزارشگران ما در مکانی که این واقعه رخ داده بود راکت های ارپیجی و دیگر سلاح‌های های متجاوز های متجاویز باقی مانده است از این معلوم می شود که به ایشان نیست زربات سنگینی وارد گردیده است از الله تعالی می‌خواهیم که شهادت این برادران ما را به درگاه خود قبول فرماید این لیله و این ایلیه راجعون پاکستان هفته ربیع الاول مطابق نوی فیبرواری در نتیجه حملات تایاره‌های بدون سرنشین در میرامشا چهار برادر مجاهد به شهادت رسیدند بعد از این واقعه حکومت مرتد پاکستان میگوید که در این بمباردمان بدر منصور امیر مجاهدین انصار در تنظیم القاعده نیز به شهادت رسیده است 22 ربیع اول مطابق 14 فیبرواری چند موقع قبل رسانه‌های غربی خصوصاً رسانه‌ای کشوری آلمان در مورد حرکت اسلامی ازبکستان چنین گفته بود: "این حرکت یک حرکت اسلامی است که در حدود افغانستان و پاکستان فعالیت‌های جهادی خود را پیش می‌برند. و در میان ایشان، افرادی از کشوری آلمان نیز وجود دارد که ایشان از افراد این حرکت تعلیمات نظامی را گرفته. همراه ایشان یک جام می مینمایند. اما تاکنون تهدیداتشان را علیه کشوری آلمان اظهار نکردهاند. ولیکن مسلمانان جهان را به جهاد و مبارزه ترغیب می دهند در جریان این افته به تاریخ 14 فوریه یک ویدئوی جهادی به زبان آلمانی با نام وطنم مزرع است از استودیوی جندالله برآمد در این میان 2 روز به چندین لسان ترجمه گردیده و به تمام جهان بنشر رسیده است البته در این فیلم برادران ما جرم حکومت آلمان را از سقوط هیتلر تاکنون بیان می نمایند و حتی می گویند که آلمان نه فقط یک همکار با آمریکاست بلکه از سالهای متمادی تاکنون. با کمک همدیگر علیه اسلام و مسلمین مبارزه مینمایند کلماتی که در این فیلم گفته شده با سخنانی که مجاهدین آلمانی علیه حکومتی آلمان گفتند فرق دارد ایشان در بیانیه های خود علیه حکومتی آلمان گفتند در صورتی که افغانستان را ترک نمایید جنگ ما توقف خواهد کرد ولی در این فیلم علیه حکومتی آلمان خطاب شده است که اگر هفتاد مرتبه افغانستان را ترک نماید باز هم ما علیه شما جنگ خواهیم نمود تا وقتی که همه سرزمین الله تعالی به دست بندگان واقعی الله تعالی قرار گیرد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 که حکمت مرتضی پاکستان چگونه از ایران را تعذیب می نو از این معلوم می شود که ملّا و در نتیجه تعذیب این حکومت ظالم و شهادت رسیده است. سوریه، هجده ربعی اول مطابق ده فبروی، در نتیجه دو انفجار جدایگر در شهر دمشق، 28 هشت تن کشته و 225 بیست تن دیگر زخم برداشتند. البته هدف این حملات نیروهای حکومتی بوده است، اما تلفات به افراد ملکی نیز وارد گردید. 19 ربیول اول، مطابق 11 جنوری، رئیس یکی از شفاخانه های حکومتی اصوی مجاهدین اختطاف کرده شد. مستوسه ربیه الاول مطابق پانزه فبرواری شاهدان عینی در ولایت خامه می که در نتیجه گلولباری حکومت سوریه دوازده افراد ملکی به قتل رسیدن و همچنان نیره حکومت سوریه شهر حمس را توسط تیاره های جیت بمباردمان نمودند، ولیکن الحمدلله در این بمباردمان هیچ یکی کشته و زخمی نگردیدن سعودی حجده ربیه الاول مطابق ده فبرواری یک جورنالیست عرب بعد از توهین به رسول الله صلی الله علیه و سلم دست به فرار زده وارد مالیزیه گردیده بود در آنجا از سوی حکومت مالیزیه دستگیر گردیده و پس به حکومت سعودی سپرده شد روسیه نزده ربیل اول مطابق 11 فیبروری در داغستان مجاهدین بالای نیرهای حکومتی حمله نمودند نظر به گفتای حکومت آن کشور در نتیجه این عملیات یک معمول پلیس کشته و یک فرد خاص حکومت مجروع گردیده است در این عملیات سه برادر مجاهد نیز به شهادت رسیدند پونیس. 18 رویول اول مطابقه دای فیبرواری در غرب کشورهای عربی درجه حرارت با پایین تر از سفر درجه رسیده بسیار از آن مناطق اکنون تحت یخبندی شدید قرار دارد. مردمی آن مناطق می که تقریبا از 70 سال بدین سو این گونه یخبندی روخ نداده بوده است. در نتیجه این یخبندی در الجزائر 44 تن کشته شدن از این جمله 33 تن آنان در نتیجه تصادم موتر در اثر یخبندی به قتل رسیدن در تونه 6 تن کشته از این جمله 4 تن آنان در نتیجه سرازیر شدن سقف های اتاق به قتل رسیدن در مدت چند روز برق در آن مناطق وجود ندارد بعد از این یخبندی ها در الجزایر قیمت گاز از 5 یورو و 3 یورو افزایش یافته است آلمان 18 ربیع اول مطابق 10 فوریه ظلم و مفاسد از سوی نیروهای آمریکا در افغانستان ادامه دارد بعد از بیرون شدنی ویدیوی اخیر آمریکایی که در آن اساگیر آمریکایی با جسد شهدا توهین مینمایند اکنون تصاویری جدید در صفحات اینترنت به رسیده است در این تصاویر در رقب نیروهای آمریکا پرچم هتلر وجود دارد بعد از این واقعه جنرال آمریکایی همه این نساکر را از وظیفه برکنار ساخته است هن. دستشار ربیل اول مطابق 16 فیبرواره در پایتخت هین یک انفجار شدید در پیش روی اسرائیل با وقوع پیوست در این انفجار چهار اسکر یهودی به جراحت رسیدن یهودیان اسرائیلی گفتن در این کار دست ایران و الله داخل بوده است که ما از ایشان انتقام خواهیم گرفت. و بالاخره یک خبر جالب ده روز قبل دعای بر حق مجاهدین استاد امرا ابو مصعب سوری از زندان سوریه ریها گردید. این یک دستاورد بزرگی به مسلمانان جهان خواستن به مجاهدین عزیز می باشد. شنواندگانی عزیز، این بود داشته های برنامه امروزی ما، که به خدمت شما تقدیم نمودیم تا برنامه دیگر خداوند منان یارو یاورتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. كما تلفو شرب الخمرتي فتكان لا تفرح فقط جئنا بجيش أحمد يكون للموت كما تلفو شرب الخمرتي. آهل لنيل شهادة في ساح أقصان الأبي آهل لنيل شادة في ساح أقصان الأبي زمجر وأطلب مسمعي زر الشاش أبي زمجر وأطلب مسمعي زرصاص رشاش أبي زمجر و أطلب مسمعي زرصاص زرشاش أبي زمجب رثاء الأما.